الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله عز وجل نسال الله ان يرزقنا جميعا توكل على الله ولا يضرنا يرجو بالله من شر فان الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و سیدنا و الله و و الله و کنم که بحثی که شروع شد و جبه مجیدیت کتاب از که آن اخباری ها در مسئله مخالفت کرده. ما متعرض یه بحث اجمالی شدیم راجع به تقسیم بندی آیات کتابی به لحاظ روشن بودن و روشن ندیدن به اصطلاح مثلا مفهوم هست مفهوم نیست آیا قابل تمسک هست قابل تمسک نیست از شد که در اون چی که ما الان در خود قرآن داریم یک آیه واحدی که ظاهرش اینه که آیات مبارکه رو به دو قسم تقسیم می‌کنه، محکم و متشابه. قبل از اینکه وارد بحثش بشیم، به لحاظ رواحیات، و به لحاظ مناقشاتی که در کتب اصول در این جهت شده، این توضیح رو از کردیم اینکه ظاهر خود آیه مبارکه لفظ متشابه که این معنی نیست که الان در ذهن ما هست. چون در ذهن آیه محکم یعنی آیه‌ای که واضحه هست و متشابه یعنی مجمن حالا با اختلافاتی که در این اجمال و تفصیل آمده لیکن ارز کردیم ظاهر آیه میباره که این نیست ظاهر آیه میباره که است که اولا آیه در مخاطبه با نس... مسیحی های نجران نصار های نجران نازل شده و در مقام محا... محاکی با مخالفین اسلام. در مقام خطاب با مسلمان ها نیست با مخالفین و مسیحی ها نازل شده و در آیه که و انزل علیه کل کتاب اینکه بعد از اینکه در آیه رواره آیه فرمدی را جب تورات و انجیل صحبت میپرماین و انفرم و انزل علیه کل کتاب منها آیات و محکمات هنه اممون کتاب و او خرم از کردن اگر ما باشیم و لحظه تشابه تشابه رو در لغت عرب جایی رو کار میبرن که از دو طرف شباحت باشه نه اینکه که خود کلام مشتبه شبه رو یا مشتبه رو به جایی به کار میبرن که خود مطلب پی نفس داره ارز شد که در نحج و بلاغرمی رو مومی فرماین رو شبه گفتن چون درش شبه حرف هست یک مطلب است، لکن شباهت هایی به حق داره اصطلاحا به این یه شبه شبه جایی است که یک امری شباهت داره مشرا هم به این گفته میشه شبه هم به این گفته میشه مشرا هم به این گفته میشه اما متشابه این نیست متشابه عبارت از دو امر نه یک هم که هر کدوم به دیگری شباهت داشته باشه یعنی این به او شباهت داشته باشه اون هم به این شباهت داشته باشه تشابه تقریه قاعده با به تفاول توضیحش ارز کردن جمعات عرب وقتی که یک فعلی از دو طرف صادر بشه و لحاظ بکنه صدور فیل رو از دو طرف لحظ تفاول به کار میبره مثل تغارب زیدون و امرون این تغارب زیدون و امرون نگاه کرده زدن زید و زدن امرون این دو تا زدن رو حالا مدرخواستی زد و خورد نه زد و زد نه زد و خورد یعنی این همزد اون همزد این فعل زدن از هر دو صادر شده از کردیم ظاهرا در لغت عرب اگر این مطلب رو بخوان به این جور بیان بکنن که این فعل از یکی صادر شد به دیگری رسید و از او هم جواب داده شد با به مفالله رو بخوان وارد زیدون زگدان اما اگر بخواد این هیئتی که از این حاصل میشه اینم میزنه اونم میزنه از این هییت بخوان ترر میکنم میگن توبار رو زدان باب تباقه دارد وقت تشابه این طوریه این برو متشابه شب شبیه اون هم برو این شعری هست در کتاب افان شاشیم بروشیم وقت از زجاز و رب پتر خم و زجاز ما جام داریم جام شیشه این جام از پز زجاز و رب پتر خم رو فتش آقا این لفظ تشابه درست هم از خیلطیب به کار برده فتش ها یعنی جام شبیه شراب شد شراب هم شبیه جام شد لحظ تشابه به کار برده خیلی زیبا به کار برده و تشا کل هم رو تشا اینجاانه شکلهیه اف شعری به لب با شک بکن اما مشکل شد. فک ولی نه ولیکنکن نه خ ولا قد ها و که نه ها قدم ها ولا خ اووی جانگ شراب یا شراب هم رنگ جام گرفت. این رو تعبیر به تشابه کرده. به نظر جامیسی به فارسی. ترجمه کرده از بله از چیه لطافت می و جام به همامیخ رنگ جام و مدام این به جای تشابه لحظه به همامیخ این هم نسبتا بد نیست یعنی این شبیه و اون شده از صفای می و لطافت جام به همامیخ رنگ جام و مدام مدام این یعنی شراب این به همامیخ هم به تشابه یه مقداری میخوره پس ما تشابه عبارت از یک عمری که بین دو چیزه اینه که ما یک چیز بگیم شوهه دید از متشابه لکن الان در ذهنیت و علما متشابه متشابهه کلامی که تو شوهه داره کلامی که توش اجمال داره الان ذهنیت ما اینه و احتدیروز در وحث احتمال اینو رو که چون زیل آیه آمده از این جهت در کلمات اصحاب و در روایات حتی متشابه بیرمان است لکن اگر خوب دقت بشه ظاهرا در اینجا یک لطافت خاصی رو خداوند متعال در تعبیر به کار برده بعد که می و آخر متشابه ها و ام من لذینه فی قلوبه هم زیغون زیغمانه انحراف به اصطلاح کجی کسانی که کجراهه میرن انحرافی هست فیدت ما تشابه من. این به نظر من نباید متشابه رو به قلیه زیبی این من یعنی در اینجا خداوند متعال در زیل آیه از اسناد هدسی استفاده کرده، پیاده‌وند مات هشابهات. پولی، در سطر آیه از اسناد اشراقی و آخر مات هشابهات، آخر مات یکی از باب اسناد اشراقیز مات هشابهات، یکی ها از اسناد هدسیز، یا تبعوند مات هشاب همان. نفر یک و اون المتشابهات اون من فکر میکره اون زرافت نکته در اینجا باشه وقتی فرمود و اخر متشابه ها یعنی آیات الهیه بعضیاش همسان هستن همگون هستن یعنی این شبیه اونه اون شبیه اون اما اون کسانی که در غروبشون گمراهیه میخوان سوء استفاده بکنن از آیات کتابی و از خود آیات الهی استفاده بکنن برای گمبایی خودشون فید طبعون ما تشابهه اون چی که شبه داره اون چی که تشابه داره مراد از ما تشابه در اینجا مراد یک آیه است نه هر دو آیه یعنی خداوند هم که آیات کتاب جو بعضش با هم دیگه معنا بشه این با اون آیه متشابه هم. این شبیه اونه اما کسانی که انحراف دارن نمیان این دو تاره ببینن یکی رو میگیرن خیلی لطیفه مراد از زیم خوب دقصد بکنید خدا میخواد بکنید که قرآن این آیات رو باید با هم معنا بکنید اونی که انحراف داره به جایی که آیات رو با هم معنا بکنه میاد یک آیه رو میگیره در زیم مراد این بوده از کلمه ما تشابه یکی رو میگیره مثلا فرض کنی مسیحیت که به دنبال علوهیت و حبوبیت حضرت ایسای مسیح بودن می آدن می گفتن, می گفتن, می گفتن شما در باران نداریم الاربه ها نادره انسان به خدا رو ببینه پس طبیعتا خدا باید قابلیت رعیت داشته الاربه ها نادره و اون ربی که قابلیت رعیت داره ایسا مسیحه شاید تبعون ما تشاوه همه ابتقا الفتنه اینکه مردم مسلمان رو از دینشون برگردونن و کباه تعویله ابتقاه تعویل یعنی میگن ولی گفته الاربه ها ناظره این آیه تعویل میشه و انتباه پیدا میکنه اولوانه برگشتن برگشت آیه به رحویت از ایسا نصیه چون ایسای مسیح قابل رؤیت، قابل دیدنه و ربم هست پس بنابراین این آیه تعویلش تعویل یعنی بازگشت مصداق این که انسان الارد با ناظره عبارت از ایسا مسیح، ابتقاء الفتمه و ابتقاء تحویله پس دقیقه وقت خداوند اینجور نیز آیاتی کتاب مثلا نمیان با آیه و الله احد تمثل کنن قرآن بخواد بگه آیه و الله احد از قبیل محکماته هم اون ملکتا اینا میان با آیه که مثلا اله ربها ناظر تمسک میکنه برای تعویل به عیسی مسیح وقت در قرآن آمده که شما یک آیه رو در نظر نگیرید چون قرآن همسانه همگونه در این جور جاها باید آیات رو مجموعه نگاه رو نه یکی مثلا وقتی میگی لا کل ابصار و ابصار و الخبیر یعنی خداوند متعال قابل رؤیت نیست وقتی در آیه دیگه می فرماید علال عرائق یعنی درون حل صوبه بل کفارو ماکانو ی عملون. که به اصلاب مؤمنین روی عرائک نگاه میکنن که آیا کفار عملی رو که انجام دادن با اونها پوشیده شده مثل لباس صوبه و از و نه لباس خیلی تبدیل زیباییه جزای عمال اونها مثل است که انسان بپوشه آیا کفار وقتی میگه ال ها ناظره یعنی اینها به خدا نگاه میکنن که جزای افراد چطور داده شده پس این آیه واحده رو شما میگیریم به طبعون ما تشابه همه آیه واحده رو میگیریم بقیه آیات نگاه نمیکن مجموعه قرآن یک مجموعه همسان و همگونه اینطور نیست که شما یک آیه مثل بیدون مسلیم که خودش یک ای آیه است، اینطور نیست که لا تقرأ با مثلا ما فقط اونجا البته خب امر واضح چون تتمه کلام انتوس و کار اما در اینجا آیه دیگری پس در جایی که متشابه گفته شده مراد همسانی و همونی آیات بعضا مع بعضه. جایی که تشابه گفته شده مثل ان البقره تشابه علیها در اونجا مراد اشتباهه پس اشتباه و جابجایی در جایی که در قرآن اسناد حدیثی آمده نه اسناد اشتقاقی اینجا اسنادش اسناد اشتقا... در این آیه مبارکه هر دو اسناد آمده هم اسناد اشتقاقی هم اسناد حدیث در اسناد اشتقاقی مراد مجموعه آیاته شباهتی که بین آیات بعضا معبزه در ذیل آیه مراد از ما تشابه مراد آیه واحده است فیدتبعون ماتشابه اینجا که اصناد رو عوض کرده نه فیدتبعون المتشابه ها خیلی تعبیر لطیف اگه دقیقه کنید فیدتبعون ماتشابه یعنی یک آیه رو متبعه اتباع میکنن اون بغلیش و دیگری رو که آیه دیگریست نگاه نمیکنن. فقط بی یک آیه نگاه میکن و سعی میکنن کنه همون آیه مثلا یا بنی اسرائیل که نعمتی الهی است هم تو علیکم و انی فضلت کو علی العالمین. الله داشت که مثلا بنی اسرائیل یهود بر تمام بشر روی زمین تفضیل دارن. خب روایت آیات دیگه داروسف ما قتل اعمال انبیاء، فما نخر میثاق یعنی اینهایی که ذاتن از نسل پیغمبر بودن بر اثر اعمال زشتشون دقت می‌کنید؟ نمیشه شما یک آیه بیارید یا بنی اسرائیل علی فضلت کو علی پس بگیم یهود نسل برترند، امت برتر الهی یهودند آیه دیگه هم داره فبه ما نقضه هم, هم و قتل همون انبیاء به غیر حق آیه دیگه هم داره فضربت علیهم همون ذلتو المسکنه و با او به قضاون الله نه یک آیه را همه را مجموعه مجموعه یعنی اینها چون بنی یعنی فرزندان اسرائیل هم اسم یعقوبه در اصطلاح اسرائیل اولین کسی. یعنی اول کس یعنی اصولاً از که اصلا اسرائیل فقط لقب یعقوب یعنی خدا با هم همچو مضمون این که خداست اسرائیل لقب یعقوب یعبوب یعقوب پسر اسحاق پسر از ابراهیم سلام الله علیه دوازده پسر داشت که خب یوسف و بنیاد. دوازده پسر معروف اسوات به اصطلاح اونها گفته میشه بچه های خود از یعقوبن که تقسیم بندی دنیا یهود فی ما بعد رو همین فرزندان از ذات یعقوب یعبوب دقیق اینکی یا بنی اسرائیل یک طرف میگه انی فضل تو کما علالمین از اون طرف میگه فوا و بغا من الله و رد علیهم و المسکنه نمیشه شما یکی رو نگاه بکنید بقیه رو ول بکنید اگر بخواد نگاه بکنید همه رو باهم یعنی اینها ذاتن فرزند پیغمبر هستن اما عملا در مقام عمل قتل انبیا کردن نحزه میثار کردن از راه خارشان رد علیهم ذله و المسکنه اینایی که فضلتقون علالعالمین بود مبتلا شدن به انواع ذلت و مسکند و بیچاریدی و بخی دقیقه فرمونتیم پس فنابراین مراد آیه مبارکه در صدرش اون وقت گفته شده این یک مرد بحث مخاطر من که دوش تحکیب ندارم گفته شده انزال با تنزیل فرق میکنه در قرآن اینجوره اگر تنزیل آمده مراد اون تدریجیه اگر مراد انزال آمده دفعتا واحد است اینطور گفته شده وقتی این اگر بگیم این معنا حالا در بعض از آیات که قابل تشریح هست انصافاً حرف بدی نیست الله ها انزل اونجا داره نزل احسن الحديث کتاب متشاه دهند این آیه در مکه است خوب دقت بکن خدا بندمون مت... چون گفتن که احادیث فلان حدیث نابکره آیا آمد ان الله الله ان نزل احسن الحديث خداوند بهترین گفتارها را کتاب وقت نزله یعنی یک مقداری که تا حالا تو مکه آمده بعد سنوات آینده نزاله مثانی این کتاب در مجموعه 23 سال همه با هم همسان هستند همگون هستند امیرالمومنین یکی از در نهج البلاغه یکی از اوصاف رسول الله رو ولن تفرغ از تا تعارض و تناوب داره احوال رسول الله در ته 23 سال با هم دیگه ببینیم اینجا تأثیر به نزله کرده وقتی صحبت از خود کتاب کتابه کتابه که بعد آیاتو ثم مفصلت ملل و حکیمن خری کتابی است که حقیقت و واقعش فی غایت ال اتقان و استحکام احکام و کلمه حکم مثلا باب افعال که برده بشه اصطلاحاً اینه هر چیزی که در غایت ال اتقان باشه به حیثی که هیچ گونه حتی به مقدار یک میلیاردون در او مثلا جای فراغ و جای اشتباه نباشه کاملا یک شیء رو انسان دقیقا انجام بده و لذا صرف این که مثلا فرض میکنیم در بعضی از کشورهای خارج یا در خود ایران ساختمان هایی هست که مثلا چند هزار سال میمونه این مال احکام و استحقام رو و اتقان روز اصطوراً شاید تجربهات بروشه در لغت عربی همیشه علت فساد یک شعی رو دخیل یعنی این شعی دخیله دخله دخله خود شما داخل شدن که معتقداً هر چیزی که غیر از او داخل بشه این موجب فساد میشه فرسون شما گچی که به ساختوان هر مقدار تو گچ گتش، این گچی که میزه اناس را غیر گچ باشه گچ رو خراب میکنه تو سیمان اناس این اصطلاحشونه احکام عبارت از یک چیزی است که در اون هیچ نوع خللی فرجی جای به اصطلاح مشکلی ولو در مقیاس یک میلیاردون هم نباشه یک هزار هزار میلیارد میلیارد میلیار وقتی کاملا تمام اشیاء به جای خودش قرار گرفت خواهی نخواهیم بقا داره دوام داره این کتاب حکمت آیات و اشاره بینه این کتاب مبارد آیاتش از این قرار. وقت در مقام تنزیل در مکی می نزل احسن کتاب کتابا متشابه <تصفيق> یعنی تو حالا که آیاتی آمده بعد از تو مدینه قاعد آمد تمام این به صورت یک کتاب متشابه تمام این بیست و سی سال با هم همگون و همسان هستن وقت در سال ده مهجرت وقتی در مقابل با اهل کتاب و با مسیح یا قرار می گیره خداوند متعال اینجا میگه الله و انزل کتاب تعبیر به انزال کرد اینجا تعبیر به نزله نداره و انزل الیک کتاب اون کتاب رو ظاهرا اشاره باشه به با اون کتابی که او آیاتو و به ثم مفسرت للذین و انزل الیک کتاب اینجا دیگه ظاهرا ناظر به مجموع آیاتی که در سال ده ناظر شده که خیلی حالا سوره ماهده بعد از این بود موزم قرآن بالای 90 درصد قرآن نازه ولیذا تعبیر به انزله و انزل علیکل کتاب بعد اینجا که انزل علیکل کتاب منها آیات و محکمات هن ام مل کتاب شاید مراد به ام مل کتاب در اینجا اشاره به همون کتابون حکمت آیاتوه باشید یعنی چطور این کتابی مقام امر احکام پیدا کرد بود و استحکام داشت و هیچ گونه خللی در راه نداشت در مقام انزال هم در مقام تعبیر هم بعضی با اون امول کتاب میخورن نه با اون اصل میخورن مثل قلوبه الله و احر. این هم کاملا متخن هیچ یک از مذاهب فاسته نمیتونه به قلوبه الله و احر تمثب برای اصفات مذاهب فاسته خود و اخر متشابه ها اما اده از آیات همسان هم خب دقیق میکنیم همگون هستن در آیات همسان و همگون به یکیش تمثب نکنیم اگر میخوایید یک آیات بزنیم قصه انی فضلتو کنیم یهودیان ها تو که قرآن هم گفته ما نجال برتر هستیم ما طائفه برتر هستیم امت برتر الهی هستیم و انی فضلتو کنیم اینو به تنهایی نگاه نکنیم اگر میخواید نگاه بکنید. بگذاریم در ضمن آیات زربت و ما زلو المسکنه و, و نقضه میساقه ها و قبله ما مجموع رو نگاه بکنیم آیات همسانش رو نگاه بکنیم اینها برای اینکه به اصطلاح به اون تعبیل و انحراف کشیده بشن رفتن یک آیه رو حالا من ذهنم اینطوره خداوند در صدر آیه متشابهات اسناد اشتغابی اون رو مراد مجموع آیاته در زیل آیه یا ما تشابه ما نگو متشابه این ما تشابه مراد آیه واحده است نه مجموع ما تشابه. یعنی اینا به جویه که به مجموع و تمثل کنی یکیشی میگیرن ما تشابه یکی رو میگیرن ابتقاع انفتنه و ابتقاع تردیده برا من من ای و و نه تفسیر نیست آیه با هم باد معنا بشه یعنی خداونده متعال بفرموید چون اهل کتابان دیگه درمون شما،, شما چرا مثلا به قول الله عهد توسط نیم برای بطل آن اولوهیت عیسی؟ نه ببینید اینا نمیان به قلوبه الله عهد اثبات برای اثبات اولوهیت عیسی. او چرا به او توسط اما مثلا الاربه با ناظر توسط یا انی فضلتکم علل العالمین تمسک و اون آیدیا تمسک نمی‌کنه نه اینکه القران بحث به تفسیر نیست لو فسروا بعضی‌ها بعضن نیست ناظر به اینه که الّذین فی قلوبهم زیغون اینا چون انحراف دارن چون گمراهی دارن میخواد راه گمراهی خودشون را از این راه درست بکنن کنن فیتتبعون ما تشابه و رضا به ذهن من میاد که باز هم متشابه خودش طرفی نیه اسناد اشا این رومان واسه این بود اونجا معنی متشابهن هر اس مشتبه اون من اس از... حالا اونجا ممکن است ممکن است که بگیم اصلا مشتبهی که آمده برای متشابه اصلا اونجا خود مشتبه مشتبه هم و غیر متشابه معنی متشابه چون غیر داره بعدش نه اینکه دو تا سوره اس میدونم خودم گفتم خودم من نه اینکه مشتبه با متشابه یکیه مشتبه معنی متشابهه. رمان ویژگیتون میوه ها با هم دیگه تشابه دارن، هم خانی دارن، هم سویی دارن. این درسته، بحث درستی الان. الان مثلا در شمال زیتونه که میخوان پرورده کنن، آره چیز رو قهر کردن، چیز اسمش یه روغنا میذاره. این تشابه این دو تا با هم دیگه دارن. زیتون پرورده می‌ذار اینجوری، توش روغنا می‌ذاره. رو آیه ها نه اونجا مشتبه معنی متشابهه. نه نمو... م... به اصطلاح متشابه و معنی مشتبه لذا به ذهن من اینطور الان میاد تشابه و متشابه به معنی شبه از طرف اینه نه شبه از طرف واحد البته اعز کنم در آیات مبارکه در این آیه مبارکه اون ما تشابه به معنی شبه از یک طرف به معنی واحد گرفته شد نه طرف اینه در زیب آیه لکن اونجا اسنادش در قرآن عوض شده یعنی مراد از قرآن این نیست که افرادی که فی قلوبهم همزه به آیات متشابه عمل میکنن نه به یک آیه عمل میکنن به دیگری نمیکنن این مراد اینه باید تبعه اون ما مراد اینه نه مراد است که اصلا قسمی از آیات مثلا فی نفسها متشابه و مشتبه که اینا میان به اون رو آیات شبهناک بهش به اصطلاح عمل میکنن. این نیست. مراد ظاهر. هم. مراد زیل آیی مبارکه. یعنی اینا آیاتی که در ضمن مجموعن به یکیش تمسط میکنن. به مجموع نگاه نمیکنن. خب در باقیه همون میشه. یکیش نگاه کنن نمیشه. نه اونا میدونم و جا عرب. اونا میگن اصلا خود آیه کار نداری بمجموع. خود آیه مشتبه آی نفسی. این جوریه نه نی نشا عربو کن میگی اینو شما با آیات دیگه مثلا مقایسه بکنی مجیع در اینجا معنی ظهور باید باشه بقوله اللهن خود القایات و کلمبادی این جور افعال نظرش به قایاتش نه به مواضیش با یعنی و... آیات دیگه آیات دیگه خب از اجمال نه اینکه این یعنی اینا با هم اینا رو دو رو با هم مجموع نه اینکه هر یک آیه فی نقص ابهام داره ابهامش برداشته نمیشه اخیراً متشابه رو یعنی یک آیه فی نفس ابهام داره مجمل متشابه الان به اشتباه میندازه نه متشابه به اشتباه نمیندازه این شبیه داره شبیه که نگاه کنی از معنی اش واضحه این دو تا با هم باید معنا بشه گاهی بعضی از آیات مثل قلو الله حد به تنهایی معنا میشه بعضیا باید در ضمن آیه دیگه معنا بشه این مراد اینه اگر <كش> <بزور> یعنی تنها نگاه کنه این خوب شوبنال میشه شوبه نداره این آیه اصلا تنها نبا. نه اصلا قران نمیخواد تو تنها یعنی اصلا این تنها بررسی نمیشه صراحت نازل شده تنها نازل شده ده. نه تنزیل ببینید تنزیل اینجوری در طی 23 سال یک آیه تو مکه آمده، یک آیه تو مدینه آمده. میگه این رو باید با همدیگه نگاه بکن در مقام تنزل این طوره حالا تو مکه تا به مدینه خب اینجا این اینجای مرحله است که مرحله جنبندیه و, و انزل علیه علی کتاب. این در سال دهمه. ده کلا اند متأثر بخوام بفرمان که بعضی از آیات اینجوریه یعنی باید این رو بار آیه دیگه شبیه. این بوی شبیه اون این شبیه. نه این که مشتله تی نفسه. بی نفسه اشتباه نداره حالا چهار عدد به چی شده اینا ماشاءالله افالی که خداوند از فعل و این حرفا به امر اونها میشن محکمات این میشه محکمات همین این نیست هر با دو با هم میشن یکی نه نه یکی محکمه یکی متشابه این اشتباه نشه دقیق این فهمه شما قلق و واحد هم متشابه نه چون مرخه نه اون به تنهایی نه دیگه خودش پی نفسه کافیه و لذا هم قرآن هست که میکنم آیه در مقام مهاجعه با غیر اسلامی هاست میگه شما ها در مقام چون فتنه و تعویل هستیم یک آیه رو میاریم بیا مجموع آیات رو با هم بررسی کنیم و لذا شما این وقت نمیینه از آیه مثلا قلوه الله و درباره در هست ایسای مسیح معنا بکنید. اما مثلا میگید که الاربه ها ناظر پس ایسای مسیح هم رب ده متشابه نیست. این اینجور میگه, میگه وقتی که پیغمبر صحبت میکنه آیات علاقی میاره ما یه خط امتدادی داریم آیات من حیصل مجموع از اول نزول تا آخر نزول همه با هم همثانه این همسانی این شبیه او نه آیه آیفی نفس مجمله این خیلی از اون با بگم بله بله همه دنبال یک واقعیت هست همه رو با هم همه رو با هم, هم باید با با نگاه کرد یعنی این همثالی شما در چون همسادن شما میگه یک طرف همسانی رو میگیرید نمیگه این آیه مجمله اجمال تو آیه مطرح نیست <تصفح> یک منظومه ایست که همخانی و همسانی و همگونی دارن با هم نه اینکه که مشتبهه نه مشروح نیست، مجمل مجمل اجمال نه اجمال. اجمال. نه اجمال. نه اجمال. نه دارم. دارم. عوض میشه، تعبیر وقتی هم میدونم. عوض نمیشه اصلا اینا با هم, هم, هم. جدا نیستن. جدا, جدا. جدا که جدا باشه، شما میان به یکیش میگیریم برای اینکه تعبیر بکنیم و لزام ببینید دقت کنید میگه اله را به ناظره خونی که میشه بهش نظر کرد عیسی مسیحه پس تعبیر میکنیم رب رو برای عیسی پس عیسی رب بود میبینی اینجوری چون ایش... در تقابل با محکمات اومده چون نه. تقابلو... یعنی بگم تقابل رو یا تماشای لطیف ما خیلی هم باور دقت بله نه ت... تقابل با محکمات تقابل نداره میگه این اونی که در مکه از پرمو خداوند و الله نزله احسن الحدیث. اونجا مقام تنزیله اون وقت تو مکه سال 10 هجری که بیش از 95 درصد قران آمده، خداوند متعال در توصیفی که میگه شما اهل کتاب که آمدین و الان مهاجر میکنید اینو بدونید آیات کتاب یک بخشی که تعبیر بر نمیاره شما بهش دست نمیزنید یک بخش دیگه نه که ب... ب... خود کتاب اولاً کلن همینطوره به یک معنای به یک معنای دیگه بعضی از آیات رو با همسان معنا کرد همسانم همسان فارسی هم خیلی لبس نیست یعنی نمیدارم چجور بدون مثل اون به هم میخرن که جام همودا یک جوری که همه با هم رابطن یعنی این شبیه او این شبیه اون هم هم ها مثل هم بونشانی هم دیگر رو از دو طرف هم هست وقت کسانی که دنبال انحراف هستن یکیشو رو میگیرن نه اینکه اون یکی ابهام داره نه اون یکی ایهام او نداره اون یکی هم خودش معنا داره از اون معنای اون یکی میخوان یک فاصله رو مترتب بکنه من... مثلا انی فضل تو علی العالمی اذكر یا بنی اسائلت کو نعمت الی التي انا انط و انی فضل گفتم علی العالمی پس یهودی ها مثلا میگن ما نژاد برتر هستیم قرآن هم داره که ما بر همه دنیا برتری داریم آیه قرآن این چه تعبیر کرده. آیه قرآن متشابه نیست آیه قرآن مجمل نیست خوب دقیقه بکنید آیه قرآن رو میگه باید با نزیرش نزیرش و به ما نغزه ام و هم و قتل امور انبیا و غیره هم و ذوربت علیه و ذلت اینجوری معنا بکنید این دو طاله که با هم میبینید یعنی شما از خاندان نبوت بودیم فرزندان اسحاق بودیم فرزندان یعقوب بودیم که پیغمبر بود اینها اختزا میکرد شما از خاند... چون در خود قرآن اصولا نسبت به حالت انتخاب الهی مطرح این الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل امران انل آدمی یک نوع استفاء رو به خدا نسبت داده ان الله اصطفى ظاهرا آیاتی که دیگه اینجا انی فضلتک به خاطر نبوت هست اما شما تو مقام عمل انحراف پیدا کردید به کارهای فاسد رو آوردید و این منشأ شد که ذوالقرن عین ذلت و مسکنه میخوان سر به کنه پس الان نریم بگیم ما نژاد برتر الهی هستیم ما امت برتر هستیم به نسب قرآن اجمال نیست این اشتباه نشه اجمال نیست مفاهیم یک نواختند عزه از مفاهیم در یک جا آمدند از مفاهیم در یک جا آمدند بعضی از آیات نه کل مفهوم رو یک جا آورده نه این که ابهام هست اشتباه نکنید روشن نه مراد اون در قرآن کریم در این آیه واحده با دو تا اصناد تشابه رو به کار برده در اسناد اشتقاقی مجموع رو دیده در اسناد هر یک طرح رو دیده نگفت و اما الازین فی قلوب زیقون فیت تبعون المتشابه ها خب اول فرمون و اخر متشابه ها دقت است میکنی؟ و اما الازین فی قلوب زیقون فیت تبعون یعنی متشابه ها نه فنون سید تابعون ما تشابه می سیاق رو عوض کرد از سیا و عرض کردم تشابه در خود قرآن در این قصه بنی اسرائیل در تشابه علینا یعنی چی تشابه هم در اونجا چون خدا گفت اینطور گفتن ما چند تا گافیم. این شبیهونه النبقره تشابه علینا نمیدونم یه قید عامه قید زبون تا معین شده در یک بقره معینه اصل کلمه شوب هم از همینه وقت در اینجا من به ذهنم اینه که آیه مبارکی نمیگه کسانی که گمراهن دنبال متشابهن فید طبعون ماد یکی رو گرفتن نه مراد یعنی آیات متشابه آیاتی رو که در حیث مجموع معنا بکنن یکی رو گرفتن چون یکی رو گرفتن از اون یکی سو استفاده نکنن مثل از انی فضلت همه العالمی سو استفاده باید که یهود نجاد برسر الهیه فیادت به تعبیله ابتقاء تعبیله و ابتقاء الفتنه. علایه حدیر اونی که الان من به ذهنم میاد ظاهرن این اون بخ... چون که وقتم گذاشتی گرمید من دو دقیقه صحبت بکنم این راجعه ما دیگه در خود و قرآن راجعه به این که آیات قرآنی به لحاظ فهم و عدم فهم درجاتی داره چیزی نداره. ولح در روایات داریم که بعد تو بحث روایات متعرض میشم ان شاء الله این مقدمه کار بود از کلام مرحوم عسال از این جدی که داریم که پشت 47 نوشته تسلسل چاپ کتاب ایشان در صفحه 142 به بعد محض حجیت ظواهر کتاب رو که ایشون فرمودن که بله اما من اسقراگای من اسقراگای من اکبرا اول ان الفاظ قران من قبیل الرموز کفافات <سولت> صور که از قبیل رموز این مطلب را فکر کنم بالا اخبار یا گفته باشه من یادم نمیاد تو ذهن من که تماشا کرد این رو در کتب اهل سنت در کتب اصول نسبت دادن به قول خودشون به بعضی از حشویه گفتن در آن مفاهیم کلمات مثلا مثلا برایش مثل ارزش آمده تأکیدهای های بیڈیا مثلا تلکه اشارتون کامله با اینکه اشار معناش دهه دیگه ذکر کردن اما در تو من نمیخواد شد شاید داده اینشون از اونا گرفتن این بحث در بعضی از کتب و اصول به بعضی از هشیه نسبت داده شده صحت نسبت هم نمیدونم خواتر سوار هم اونا گفتن گفتن در قرآن کلمات داریم که محسلی نداره معنای نداره حالا بعضیشون که تعبیر کمی کردن این مطلب در میان علمای ما فکر نمی کنید مطلبی که های خویی به هر حال به نسبه به به اصاف فواته حالا اونم چند جور بحث داره فواته صور اگر جایی کلام مبهم بود اجمال پیدا کرد قطعاً اونجا محل کلام در حجز زواهر نیست گمیت میتونیم بگیم مثلا بعد از تفاصیل زیاد یا مثلا بگیم اسم پیغمبره مثل یاسین یا مثلا بگیم نه نمیف الا در این کتاب و تفسیر جلاله مال سیوتی اون دیگه هر جایی که دفعات اصرار میاد میگه الله اعلم به مراده الفلاحمی میگه الله اعلم به مراده من واقعا چی سر در نمیارم باز حالا به هر حال انسان این که محل بحث ما در حجج ظواهر نیست است ان القران معنای دوم مشتمل بر آن قامزه و مزامین شامخه بله و این مطلب درست این جای بحث نداره و این ما یه توری عرض کردیم که قرآن چون مشتمل بر حقایق واقعی است این حقایق لایه‌های بسیار فراوان داره این من کلام اون اولش یعنی مثلا فرض کنیم گفت اهل الله و بیت که بگیم جمیع انواع بیت اطلاق اطلاق جزء لایه‌ها هست یا نه کلام در اینه خوده قشو کنه این که فرض کنیم قلوب الله احد و احد چند تا معنا می‌گیریم جلوی الله و هم می‌بریم جلوی این هست این لایه‌های های فکری و لایه‌های های واقعی هست کلام تر اصول در اینجاست اگر گفتیم اوفو بالاقود عموم در میاد خود, خود فهم عموم از اوفو بالاقود جزء لایه هاست یا این اصلا داخل در لایه ها نمیشه این که معانی قامزه و مزامین شامخه این جاش نیست بله بعد مسئله سوم قرآن و امکان در حضور و فی حد ذاته ولیکن علم اجمالی خب اجمالی هم عرض کردیم که را میشه به خاطر اینکه مواردی که که میدونی قابل تمستاکیس مشخص شده بس در موارد دیگره مطلب چهارم در عدت و منر روایت علاقه تحریف القرآن یادم نمیاد اخباری ها بحث تحریف رو اینجا کشیده باشن تو ذهن من نیسته علاقه نصبت نمیاده شعن و استاد عجل مید. البته در کتاب کفایی آمده اما مسئله است. خود ایشون آورده که علل قول به تحریف کتاب اینم از نزونه. این قالب مختلف بوده قلم ایشون کمالایب ادل قول به ظاهرش اینه که ایشون قائل به تحریفه قالب خیلی بعید و ایشون برحال ظاهر عباراتی که در اینجا میگه این سنیان بدونوشر گندش میکنه ظاهر عبارات ایشان که قائل به تحریفه تو نشه علل قول به تحریف کتاب کمالایب ادل قول به خیلی انصافاً بعید بود از شنیشون چینی مطلبی بود به هر حال تحریف رو مطرح کرده صاحب کفایی و دیگری آقا مرحوم استادی رو دلیل اخباریا ها گرستن. فکر می‌کنم اشتباه شده دلیل اخباریا ها نیست این مسئله علم برسه مسئله تحریف تحریف هم جواب داده شده دیگه در این کتب آمادگی هم نمیخواد بخونیم اولا تحریف ها قاعد نیستیم تحریف موجب به سقوط نمیشه. این سغرا بود، چهار ورجون من سرعت خوندم و مراجعه کنم بحث کبراش کمکی شاید دقیق باشه فردا اردو روزم اردود دیگونه شد فردا انشاءالله جلد 18 وسائل در چاپ قدیم و 27 در چاپ جلد آنگیار شما شد بیارن که ما روایات اون با رو انشاءالله بخونیم یک حسله بکنیم تمام شما یه روز متعرض روایات بشیم و بگیم آی این مطلبی که مهند کلام ماست. از روایا درمیاد یا رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله <سؤال> و آله علی رضا او از زمان حمزه آمد